کالبد شکافی یک موفقیت خارق یک روز صبح در حالی که لباس می پوشیدم تلویزیون را روشن کردم در یکی از شبکه‌ها شخصی درباره برگزاری یک نمایشگاه تجاری در آلبوکرکی صحبت می‌کرد با خودم گفتم من هم باید در آن نمایشگاه شرکت کنم با برگزارکنندگان نمایشگاه تماس گرفتم و جویا شدم که آیا قرفه خالی دارند وقتی که فهمیدم قرفه خالی دارند برنامه های آن روز را تغییر دادم و 8 تا ده ساعت بعد را مشغول خرید وسایل مورد نیاز برای قرفام بودم. بروشورها و بستههایی را نیز تهیه کردم تا در بین بازدید کنندگان توضیح کنم. صبح روز بعد در نمایشگاه حاضر شدم و به سمت قرفه کوچکم رفتم. قبلا هرگز چنین کاری نکرده بودم، اطراف قرفم پر از قرفه های فوقلاده و واقعا زیبا بود و من در قرفه کوچک و ساده ایستاده بودم و تلاش میکردم کردم که بروشورهای کوچک و ساده ام را در بین بازدید کنندگان توضیح کنم روبروی من شخصی بود که در مقابل قرفه اش بالونهای خرسی شکل بسته بود، فقط ما آنجا بودیم، مرد خرسی و من در تمام طول روز مردم به قرفه مرد خرسی می آمدند تا بالونهای های او را از نزدیک ببینند من تلاش می کردم تا بروشورهایم را به آنها بدهم اما هیچ کسی هیچ توجهی به من نمیکرد. در حدود 300 بروشور و بسته تبلیغاتی داشتم و امیدوار بودم که بتوانم از 10 یا 20 نفر از بازدید بازدیدکنندگان شماره تماس و اطلاعاتشان را بگیرم اما حتی نتوانسته بودم بسته هایم را در بین آنها توزیع کنم سرانجام فکری به ذهنم رسید که مؤثر واقع شد هنگامی که شخصی از جلوی غرفه من رد می شد تا بالون‌های مرد خرسی را ببیند توجهش را جلب می کردم و می آیا دوست داری در یک کار مخفیانه با من هم دست بشی؟ آن شخص توقف می کرد می خندید و می البته تمام آخر هفته از این شیوه استفاده کردم و همه آن 300 بسته تبلیغاتی را بین بازید کنندگان توضیح کردم در آخر اطلاعات و شمار تماس حدود 20 نفر از آنها را گرفتم یکی از آن افراد دکتری به نام شاپیرو بود هفته بعد با دکتر شاپیرو تماس گرفتم گفتگوی دلپذیر و بسیار خوبی داشتیم اما اتفاق خاصی نیفتاد چندین بار دیگر نیز با او تماس گرفتم بعد از حدود یک ماه و نیم پیگیری دکتر شاپیرو برای همکاری در کسب و کارم به من ملحق شد همان زمان ها بود که متوجه شدم شرکت ما در صدد است تا حدود شش ماه دیگر دفتری در آلمان افتتاح کند. من گروه همکارانم را جمع کردم و به آنها گفتم دوستان قرار است دفتری در آلمان افتتاح کنیم. آنها گفتند چطوری؟ خب چطورش را نمیدانستم؟ تنها کاری که بلد بودم انجام دهم این بود که نرخ شکست هایم را دوبرابر برابر کنم. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش میآید ما درباره افتتاح آن دفتر جدید مشورت کردیم و به آنها گفتم کاری که لازم است انجام دهیم این است که چند شخص آلمانی تبار پیدا کنیم. بنابراین در جلساتمان آموزش این استراتژی پیچیده و شگفتانگیز را شروع کردیم که آلمانی ها را پیدا کنید یکی از همکاران این ایده را مطرح کرد که به یک نمایندگی محلی مرسدس بنز برویم. شخص دیگری نیز پیشنهاد داد که به یک باشگاه محلی آلمانی برویم. ایده ها یکی پس از دیگری شروع به تراوش کردند. حدود دو هفته بعد دکتر شاپیرو در یکی از جلسات ما حضور یافت و گفت من یک شخص آلمانی پیدا کردم. از او پرسیدم چطور؟ گفت با همسایه که مشغول کوتاه کردن چمنهای حیات خانهش بود، صحبت می کردم و از او پرسیدم آیا شخص آلمانی تباری را می شناسد؟ او گفت بله، یک نفر را میشناسد که در آلمان زندگی می کند. از آنجایی که مشغول برنامه ریزی برای سفر به آلمان بودم، از دکتر شاپیرو خواستم که اطلاعاتم را برای این شخص آلمانی ارسال کند. او گفت، جف، مگر چند ماه دیگر در میامی سخنرانی نداری؟ گفتم بله. گفت خب، این شخص قرار است به امریکا بیاید و گمان می کنم که قرار است سفری هم به میامی داشته باشد. چند ماه بعد به میامی رفتم. بعد از سخنرانی آن شخص نزد من آمد و با هم صحبت کردیم. اسم او وین بود و بسیار حیجان زده بود که به آلمان برگردد و به ما کمک کند تا در چند ماه آینده دفتر جدیدی را در آنجا افتتاح کنیم. با گذشت سه ماه از بازگشت وین به آلمان شرایط هنوز محیای این کار نشده بود و برنامه بایستی تغییر می کرد. ما مجبور بودیم که افتتاح دفتر را حداقل سه یا چهار ماه دیگر به تعویق بیاندازیم. بنابراین با وین تماس گرفتم و به او گفتم افتتاح دفتر ما در آلمان فعلا به تعویق افتاده است اما دفتر ما در انگلستان همکنون فعال است. چرا به انگلستان نمیروی و کارت را در آنجا شروع نمی کنی؟ می توانی کمی تجربه به دستاوری و سپس وقتی که دفترمان در آلمان افتتاح شد ماهیت کارمان را بلد هستی و واقعا آمادهی کار خواهی بود. وین و همسرش بریجیت راهی انگلستان شدند. آنها یک آپارتمان کوچک اجاره کردند و کارشان را در آنجا آغاز کردند. یک روز در حالی که وین و بریجیت در لندن قدم میزدند به صورت کاملا اتفاقی با مردی هم کلام شدند که در حال رنگ زدن یک ساختمان بود. در حین صحبت‌هایشان سؤالی از آن مرد کردند آیا می‌توانید حدس بزنید چه سؤال هوشmandانه بود آنها از مرد پرسیدند آیا شخص آلمانی تباری را می‌شناسی آن مرد جواب داده بود بله من یک دوست آلمانی دارم که واقعا آدم موفقی است چند ماه بعد وقتی که سرانجام به آلمان رفتم شهر به شهر سفر می‌کردم و در لابی هتل‌های مختلف با افراد گوناگونی ملاقات می‌کردم در حالی که هیچ چیزی درباره آلمان نمی و حتی نمی توانستم یک کلمه آلمانی صحبت کنم. وین تمام مدت همراه من بود، شانه به شانه من حرکت میکرد، حرفهایم را ترجمه میکرد به من کمک میکرد و اطراف را به من نشان میداد. اوایل من صحبت میکردم و سپس وین حرفهایم را ترجمه می کرد. اما خیلی زود اتفاق عجیبی رخ داد من چیزی میگفتم و قبل از اینکه حتی مطالبم را تمام کنم وینگ به سرعت و بدون اینکه حتی نفسی تازه کند پنج دقیقه پشت سر هم آلمانی حرف میزد. او نیازی نداشت که من حرفهایم را به پایان برسانم و بدون من هم کارش را به خوبی انجام میداد هنگامی که فرانکفورت را ترک کردم دفتر آلمان را افتتاح کرده بودیم. امروز وین و دوست آلمانی آن نقاش ساختمان هر دو ملتی میلیونر هستند و یک شبکه فروش بزرگ را در سراسر اروپا اداره می کنند خب، این است که می خواهم از شما بکنم آیا همه اینها را برنامه ریزی کرده بودم؟ آیا امکان داشت که این اتفاق این گونه رخ دهد؟ ده یک روز در حالی که روی تخت خوابم نشسته بودم و داشتم جوراب هایم را میپوشیدم با خودم گفتم چگونه میتوانم یک شبکه فروش بزرگ در سراسر اروپا ایجاد کنم. مدتی به آن فکر می کردم و سپس میگفتم: فهمیدم همه یه کاری که باید انجام دهم این است که تلویزیون را روشن کنم. شاید آنها در حال صحبت کردن درباره یک نمایشگاه تجاری باشند. و اگر در آن نمایشگاه تجاری شرکت کنم، احتمالش زیاد است که قرفه ام در کنار قرفه شخصی باشد که به او مرد خرسی میگویند و توجه همه را به خودش جلب می کند. و بنابراین نمیتوانم بروشورهای های کوچکم را با موفقیت بین بازدید کنندگان توضیح کنم که همین باعث می شود فکر کنم که برای جلب توجه مردم باید چیزی شبیه این عبارت را به آنها بگویم. آیا دوست داری در یک کار مخفیانه با من هم دست بشی؟ و اگر این کار را انجام دهم، نه تنها می توانم همه آن سیصد بسته تبلیغاتیم را بین بازدید کنندگان توضیح کنم، بلکه می توانم از حدود 20 نفر از آنها اطلاعاتشان را نیز بگیرم. و ممکن است یکی از آنها دکتری اهل آلبکرکی باشد که ابتدا خیلی علاقمند به همکاری با ما نباشد اما بعد از سه هفته تماس مکرر سرانجام زمانی سرکلش پیدا شود که من به همکارانم میگویم از دیگران بپرسند آیا شخص آلمانی تباری را میشناسند؟ و این دکتر یک روز که همسایهاش در حال کوتاه کردن چمنهای حیات حیاط است و این خیلی خوب است که آن روز باران نمیبارد. زیرا در غیر این صورت این برنامه دقیق موثر واقع نمی شود. با او هم کلام می شود و از او میپرسد که آیا شخص آلمانی تباری را می شناسد یا نه. و او شخصی را میشناسد که نه تنها در آلمان زندگی میکند کند بلکه تصادفا قصد دارد به میامی سفر کند. آن هم دقیقا زمانی که خودم قصد دارم به آنجا بروم که این هم کاملا به خوبی انجام می شود. گرچه این شخص با هیجان بسیار زیادی به آلمان برمیگردد تا دفتر جدیدمان را در آنجا افتتاح کنیم برنامه‌ای که من از اینجا به فکر انجام دادنش بودم اتفاق نمی‌افتد زیرا مشخص می‌شود که شرکت هنوز آمادگی افتتاح دفتر جدید را در آلمان ندارد و البته این موضوع تا حدی خوب است چرا که پس از آن من به این شخص میگویم که در عوض برای چندین ماه به دفتر ما در انگلستان برود و حدس میزنم زنم که او احتمالاً این موضوع را قبول میکند و به همراه همسرش به آنجا میرود که این موضوع هم در نوع خودش عالی است و درست به همان صورتی است که من برنامه ریزی می کنم چرا که یک روز در حالی که مشغول پیاده روی هستند از کنار خانه عبور می کنند که درست در همان زمان شخصی در حال رنگامیزی آن است زیرا در آن روز نیز باران نمی بارد و بنابراین این و با او صحبت می کنند که این هم در واقع بسیار عالی است چرا که به آنها آموزش دادم که از دیگران بپرسند آیا شخص آلمانی تباری را می‌شناسند و اگر همه اینها درست بر طبق برنامه من پیش برود آن نقاش سریعا جواب می بله من یک دوست آلمانی دارم که شخص موفقی است؟ و این نیز بسیار عالی خواهد بود چرا که وقتی سرانجام من به آلمان میروم گرچه اینطور به نظر میرسد که درباره کاری که میخوا در آنجا انجام دهم کمترین اطلاعی ندارم حقیقتی است که آن شخصی که او را در میامی ملاقات کرده بودم؟ و آن شخص آلمانی موفق در هتل با من ملاقات می‌کنند و در مقام مترجم با من همراه می‌شوند و از آنجایی که حرفهای من را ترجمه می‌کنند کسب و کارمان را از کسانی که من برایشان صحبت می‌کنم بهتر درک می‌کنند و سپس آن دو نفر کارشان را ادامه می‌دهند تا بزرگترین سازمان فروش در آلمان و یکی از بزرگترین‌ها را در تمام اروپا بنا کنند و سپس من بسیار حکیمانه سرم را تکان می دهم که این برنامه بدون شک و بدون هیچ مشکلی اجرا می شود آفرین جف و جراب هایم را بالا می کشیدم و کفش هایم را می پوشیدم. آیا فکر می کنید این اتفاق به همین صورت رخ داد؟ البته که نه پس همه این اتفاقات چطور به وقوع پیوست؟ حقیقت این است که من کارم را فقط بر طبق یک برنامه شروع کردم و برنامه من این بود به همکارانم گفتم که از دیگران بپرسند که آیا شخص آلمانی تباری را میشناسید برنامه من دقیقا همین بود. این همان برنامه هوشمندانه و زیرکانه من بود. همانطور که می دانید، این برنامه عملی شد. حتی می توانید بگوید اینقدر ساده بود که واقعا احمقانه به نظر می رسید. اگر شما کارتان را بر طبق یک برنامه شروع کنید و به آن اقدامات منظم ساده و روزانه عمل کنید، این برنامه منجر به برنامه بعدی می شود که آن هم خودش منجر به برنامه دیگری می شود و همینطور آخر. آیا می توانید حدس بزنید این زنجیری مزهک و بعید وقایع چند بار امکان داشت قطع شود؟ حتی چیزی بیذره و بی خطر مانند رگبار باران در یک بعد از ظهر می توانست آن زنجیره را کاملا به هم بریزد و از بین ببرد: نه یک بار؟ بلکه دو بار. چرا اینطور نشد ؟ زیرا ما کارمان را بر طبق یک برنامه شروع کردیم و سپس به برتری خفیف اجازه دادیم که به شیوه خودش عمل کند؟ جیوه مؤثر واقع شدن یک برنامه ساده، زمانی که با پیگیری مشتاقانه عادتها و اقدامات برتری خفیف همراه می شود، به شکل بسیار زیبایی در این نوشته بسیار معروف از کتاب هیئت اعظامی اسکاتلندی به هیمالیا، نوشته دبلیو اچ مورای کوهنورد اسکاتلندی بیان شده است. او می هر انسانی تا هنگامی که خودش را به چیزی متعهد نداند، همواره دچار تردید و دودلی است و احتمال ناتوانی یا عقب نشینیش وجود دارد. در هر کاری که برای اولین بار انجام می دهید، حقیقتی اساسی وجود دارد که قفلت کردن از آن ایده های بیشمار و برنامه های را از بین می برد. آن حقیقت این است، لحظه یک که انسان خودش را کاملا متعهد می کند، مشیت الهی نیز به جریان میافتد و انواع و اقسام رویدادها برای کمک رساندن به او اتفاق میافتند که اگر جز این بود، هرگز اتفاق نمی افتادند. زمانی که تصمیمی گرفته می شود، جریان کاملی از رویدادهای مختلف، وقایع غیرمنتظره غیرمنتظره، ملاقات و کمک های به طرفداری از آن به وجود می‌آید که هرگز در خواب هم نمی تواندید. من اعتقاد زیادی به یکی از جملات قصار گوته دارم هر کاری را که می انجامش دهید یا در رؤیایتان گمان میکنید که انجام است بیواهمه آغازش کنید نبوغ و قدرت سهرامیزی در بیباکی نهفته است جریان کاملی از رویدادهای مختلف که هرگز در خواب هم نمی تواندید به سوی شما خواهد آمد این عبارت توصیف کامل و بسیار خوبی از نحوه شکگیری شبکه آلمانی فروش ماست. تلاش نکنید که تمام مسیر را از پیش مشخص کنید. فقط تعیین کنید که برای شروع باید پایتان را در کجا قرار دهید؟ فقط شروع کنید. یک گام شجاعانه در مسیر تسلط یافتن بر آن موضوع بردارید. نتیجهش ممکن است به طور باور باورنکردنی پیچیده به نظر برسد اما به هیچ وجه اینگوونه نیست و هرگز اینگونه نبوده است. همیشه چیزهای ساده ی بسیار کوچک هستند که شما را به هدفتان میرسانند. هر کاری که انجام میدهید و هر تصمیمی که میگیرید در واقع یا رویای خودتان را میسازید یا رؤیای شخص دیگری را. هر کار کوچکی که انجام میدهید یا شما را با توده مردم همراه میکند یا شما را از توده مردم جدا میکند و به اوج میرساند. هر کاری که انجام میدهید یک تصمیم برتری خفیف است. استراتژی ما برای افتتاح یک دفتر جدید در آلمان به صورت خندداری ساده بود چیزی که این موفقیت بزرگ را به ارمغان آورد این بود که ما هر روز انجامش دادیم آیا ما در آلمان بعد از یک روز یک هفته یا حتی یک ماه به موفقیت رسیدیم؟ البته که نه ما جز تعداد اندکی اسم چیز دیگری نداشتیم و آنها همان سکه یک سنتی ما بودند پس از چند ماه آن اسامی اندک اروپا را با یک امپراتوری مالی پوشانده بود درست مانند همان سنبل آبی داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب کتی ارم هلنا ایالت منتنا بعد از سال‌ها فعالیت تو صنعت املاک و مستقلات یه روز صبح که از خواب پا شدم فهمیدم دیگه نمیتونم این کارو ادامه بدم حدوداً چل سالم بود و رو به زوال بودم یه سفر تفریحی رفتم مونتانا تا نیرومو دوباره به دست بیارم و توی این سفر عاشق آسمون آبی روشده ها شدم کوها و رودخونه ها با من حرف می زدن میدونستم اونجا همون جاییه که یه روزی توش زندگی می‌کنم. برگشتم تگزاس صنعت املاک و مستقلات رها کردم و در حالی که با رؤیای زندگی در روستایی به آسمان آبی سرمست و پر از انرژی بودم، کسب و کارم را شروع کردم. رویاهای خیلی بزرگی تو ذهنم بود رویاهای واقعا بزرگ من مثلا فکر می یه مزرعی دارم تو کوه مونتانا با هکتار زمین جنگلی رود خونه ها و نحرهایی که وسطشون جاری بود چندتا اسب داشتم اتاقای بسیار زیادی واسه اسکان همه دوستان اعای خونووادم که بیان اونجا و کیف کنن یه مرکز همایشم هم. تو املاکم هم داشتم و بنابراین میتونستم مراسم یا برای تجدید دیدار خونوادا برگزار کنم البته وضعیت زندگیم اون وقتا حقیقتا خیلی سخت و ناجور بود ولی من اصلا توجهی به اون وضعیت نداشتم به جاش کاملا روی یه جایی تمکز کردم که میخواستم تو پنج تا ده سال آینده بهش برسم هر روز به اهدافم نگاه میکردم و تو رویه ها میدیدم که بهشون رسیدم و خودم و وقف اقدامات روزانه میکردم که منو میرسوندن اونجا سالهای پشتر هم به تصویر اون خونه رویایی فکر میکردم تو تمام این مدت کاملا پیوسته و با جدیت برای پیشرفت کسب و کارم تلاش میکردم بعد اصر یکی از جماعه پایزی وقتی که داشتم رانندگی میکردم تا به تماشای درخت سنوبر برم که رنگشون تلایی شده بود به مکانی رویایی رسیدم خودش بود زمینی تو نزدیکی جنگلای حفاظت شده ملی با درختای انبوه و رودخونه ای که تو نزدیکیش بود روی نعده های اطراف زمین یه تابلو بود که روش نوشته بود فروشی من تا بالای اون تپه رانندگی اندگی کردم و باقی ماجران مثل یه بود توی سی روز یه زمین سییکداری خریدم که دقیقا شبیه چیزی بود که حدود ده سال گذشته رو تو ذهنم داشتم بعدم یه سال صرف باسازی و تعمیر خونه کردم تا اون دقیقا شبیه اون تصاویری کنم که در طول این سالا جمع کرده بودم خانواده و دوستام کف کرده بودن که چطور این کارا انجام دادم میتونم دقیقا به شما بگم چطور با بکار بستن اصول بطری خفیف تو همه جنبه های زندگیم. از عقایدم گرفته تا فلسفه ها اقدامات و فعالیت هم در تک تک روزا، من تکیه کلامم رو از نمیتونم شاید نمیدونم به میتونم مطمئنن راهی برای انجام دادن اون پیدا میکنم تغییر دادم. بعد الگوای فکیم رو تغییر دادم وقتی که با ناامیدی یا شکست روبرومی شدم از خودم میپرسیدم که چیاد گرفتی؟ فلسفه برطهی خفیف واقعا متحول کننده و دیگه کننده زندگیه و حالا من اونو به بقیه انتقال میدم من همون اصول و به بچه ها و نوه ها آموزش میدم تا بتونن قدر من خوشبخت باشن امیدوارم شمام رویا های بزرگی داشته باشین و با اشتیاق فراوان برین به دنبال رویاهاتون. اگه برتهیه خفیف و به طور پیوسته و مداوم تو هر تصمیمی که میگیرید به کار ببندید خیلی زود اون رویاها ها رو تعق میبخشید نکات مهم برای دستیابی به یک هدف باید سه گام ساده و اساسی بردارید. آن را به صورت مکتوب درآورید برای آن یک توصیف واضح و یک ضرب الاجل مشخص کنید <تصفيق> هر روز به آن یادداشت نگاه کنید آن را جلوی چشمتان نگه دارید و زمیر ناخداگاهتان را در آن قوطه ور کنید <تصفيق> بر طبق یک برنامه شروع کنید برنامهتان را ساده نگه دارید هدف از آن برنامه این نیست که شما را به هدفتان برساند بلکه باید موجب شود تا تلاشتان را آغاز کنید.